جریت کیسود جلد دوم فصل اول رویاگر جاودان اک آوردند که از بد زمان اک تأثیر خود را در تاریخ جهان بر جای نهاده است تأثیری بسکلان و عمیق. اما معدودی به غیر از اساسید اک و عدد کمی از چلاها این را درک می لیکن مادام اینکه که چلا یک مهدیس واصل حلقه پنجم می شود آغاز به درک اهمیت آلمگیر اکنکار در این جهان و سایر جهانهای سودماد می نماید غیر واصلین در این جهان بسیارند اما آنان که وصل به حلقه پنجم را تجربه می کنند به زودی در که استقرار در دامان سودماد حقیقتاً کیفیتی بی و نادر است آن رؤیاگر الهی رؤیاهایش را توسط مهانتا استاد حق در غیر حیات به تمامی جهانهایش فرو میفرستد تا ارواح فردی را از خواب برانگیخته و بار دیگر به جستجوی قلم به بهشتی وادار سازد از سوی دیگر کلم نیز جهت بی اثر نمودن رؤیاهای الهی پندارهای توح آلوده خود را از طریق مجاری منفی به پیش می و غالبا هم موفق است رؤیاها در برگیرنده وضعیتهای عاطفی انسان میباشند او بیشتر در مرتبه عاطفی ات به سر می‌برد و ندرتا در وضعیت خونسا و وایراد زندگی می کند. اما استاد حق در قید حیات واقف است که وضعیت رؤیا نسبت به رؤیاهای حقیقی مهدیس از معیار واقعیت بیشتری برخوردار است اندکی میدانند و قلیلند آنها که باور دارند رؤیاها عمدتا از قماش عاطفی زندگی‌اند این وضعیت عاطفی از طبقه اصیری آغاز می‌گردد و وصل به حلقه دوم اک به معنای آگاهی نسبت به این مرتبه از است. و طبق نظر دانشمندان علوم مادی و روانی عواطف تجربیاتی متفاوت از رفتار می باشند خطای علوم فیزیکی در اینجاست که معتقدند منشع عواطف ذهن بوده و از قلمرو فکری انسان جاری می شوند این مطلب به هیچ عنوان در مورد عواطف صحت ندارد عواطف را ابدا سراکاری با ذهن نیست اکیس در وضعیت عاطفی ناگزیر است که در سطح احساساتش فعالیت نماید این فقط جبر طبقه اسیری است و نه بیشتر واطل اک میداند که حالت آشفه چیزی است که رؤیاها به واسطه آن ماهیت حقیقی خود را در این جهان متجلی می سازند روح همواره در حالت رؤیابینی به سر می برد اما عواطف صرفاً هوشیاری در یکی از مراتب هستی میباشد میتوان گفت که چون این دیدگاهی وضعیت ارتقاء یافته ادراک اصیدی می باشد در این سطح آگاهی فرد تقریبا معنای حقیقی تمامی تجلیات و مشاهدات طبقه اسیدی را میفهمد نتیجه اینکه مبنای آگاهی اسیدی عاطفه است عاطفه ای که با احساس پیوند خورده است احساسات دو وضعیت عاطفی همانا خوشایندی و ناخوشایندی می باشند که هر دو آگاهانه در انسان تجربه می شود چرا که در تمامی امور یکی یا هر دوی آنها از دریچه احساس در طبقه اصیبی به ظهور میرسند. احساس پایه درد است و زمانی ظاهر می شود که جریان اک در نقطه ای از کالبد در تماس با نیروی کل قرار گیرد و متعاقبا در طبقه اسیدی احساسات برنگیسته شده و به کالبد فیزیکی سرایت می کنند و فرد را نسبت به آنچه که در هر نقطه از کالبدش رخ می مطلع متلع می سازند اواتف سازنده ارتعاشاتی هستند که از طول موجی برابر با طول موج هواس برخوردارند این های ارتعاشی بر حسب بار انرژی دریافتی خود از احساسات افتایش یا کاهش یافته و در طبیعت به صورت حرکت و یا استراحت نمودار می شوند چه احساسات مبتنی بر استراحت و فراغت ذهن و دل به ضرر چلا تمام شود زیرا فرمول مذکور بخشی از مسئولیت پذیری روح در قبال پذیرش یا رد تقدیر نهایی اوست که بایستی آن را به تنهایی بپیماید کل تاریخ کیهان فیزیکی بر اساس وضعیت عاطفی بشر در آگاهی اسیری شکل گرفته است بدین معنا که فرهنگ ملل پیرو ادیان اصولی با تکیه بر این معتقدات توانستند تا حد زیادی نظم و ثبات را در میان توده ها ایجاد کنند به عنوان مثال با اعتقاد به اینکه بشر از بد به تولد گناهکار است و فقط به واسطه یک ناجی رهایی می با کند و در مذاهب این سیاره مشخص می شود که هیچ یک از مذاهب و فرهنگ های پرست را یارای مقابله با این اصل اعتقادی نیست که بشر از بد خلقت خلقه گناهکار است مگر آنکه منجی موعود را بپذیرد ولیکن این حکم بر اساس منطق نیروهای کل شکل گرفته است و آدمی پس از پی بردن به نادرستی این است که خود را در مردابی از انبوه مسائب خواهد یافت مردابی که از کسرت عقاید تازه برای خود ساخته است یکی از عوامل چون این کسرتی ارزیابی های مداوم است که انسان به موازات رشد ابعاد ذهنی از برای خیش میاندوزد فیوری گناه ازلی انسان از قدیمی ترین است هاییست که کل برای قافل نگه داشتن روح از رسالت حقیقی خود طراحی نموده است دامی که ارزامن زمان و تناسفاتی بیشمار را در این جهان طلب می کند ولیکن انسان می با آن رو به رو گردد تا تصویه شده و با ورود به اقلیم بهشتی همکار سودماد شد تمامیت این مصود در بدن اک یافت می شود زیرا آنچه برای آزادی حقیقی لازم است عبارت است از استاد وصل و جریان صوتی این کل حقیقت و منظور سودماد از هستی روح در جهانهای پایین است تمامی اصول عقاید مربوط به گناه البشر می میبایستی با ظهور یک منجی که خود را در راه گناهان آدمی زاد فدا میکند پاک شود اما تمامی این جهان بینی ها ریشه در میروی کل دارند آدمی هرگز رهایی نمییابد ولیکن روح توسط ماهانتا استاد حق در غیب حیات آزاد میگردند هیچ مرجع دیگری را این شایستگی نیست که روح را از تناسخات بیشماری که در راه جستجوی آزادی از برای خیش در زمین رقم زده برهاند هیچ طریق دیگری برای آزاد نمودن شعن مقدس روح و ورود به کیفیات بهشتی سودماد وجود ندارد ایک زندگی و زندگی است اما هنطا استاد حق در غیر حیات راه است. هر هرچند که مبانی متون مذهبی خلاف این را ادعا می کند او یک مبدل و مجرائی خدایگونه برای برای است هیچ مرام مذهبی به جز باداشتن استادی زنده در رأس خود قادر به ادامه حیات نیست این استاد بایستی هم در کسوت فیزیکی و هم در خیش درونی فردی زبده در حقایق معنوی باشد تا فرد به سوی استاد حق در قید حیات نیاید و او را با ایمان و اعتماد تام در زندگی نپذیرد محکوم به گذراندن زندگی های بیشمار خواهد بود و با وجود آنکه در خلال هر یک از این زندگی ها بارها و بارها با ماهانتا مواجه می شود ولی همچنان کرکورانه به جستجوی فیش ادامه می دهد و در حسرت فرصتی طلایی باقی می ماند تا اینکه بالاخره طریق را در پیش گرفته و این جهان را برای همیشه ترک می گوید. قرصت دوباره و دوباره برای هر یک از روح هایی که زمان خود را در این جهان صرف کرده اند از راه میرسد. ماهانتا همراه تمامی روح زمانها بوده و خواهد بود اما معدودی او را می پذیرند. آنها در مرتبتی نیستند که بتوانند حکمت و فروغی که از او جاریست را درک نمایند شعه ای که یکایی یک که آنها را به جهانهای بهشتی میبرد جایی که تا ابد در روح زندگی میکنند عدم پذیرش مخانتا واقعا غمنگیز است و در این صورت جوینده بایستی به تفحص و سعی و تقلای خود در یافتن راه آسمانی اک و استاد حق که او را به اقلیم سوگماد رهنمون میگردد ادامه دهد اما تلاش او بیستمر است هیچ مقامی به جز نمیتواند او را زندگی بخشیده و راه به سوی منشأ عبدی کل را به بید بین زندگی یر بدون دانستن اصول بنیادی اک و عمل بدانها بیمعنی میباشد در واقع شرط لازم و کافی زندگی یک چلای اک آن است که در طریق شخصی خود آن چرا که جملگی اکیست ها بدان دعوت می شوند تمام و کمال انجام دهد و آن عبارت است از اینکه که وفاداری آنها ضامن تعهدات وصل است و زندگی اجتماعی ایشان تجلی روشنی از زندگی در اک و کالبد مهانتاست که آنها در وصل به اولین حلقه یکی از اعضای آن شدهاند. برای ها واضح هست که اکنکار یک مقوله ای و منزوی نیست آن در متن قرار دارد و سر با اصول اساسی زندگی بشر است بنابر این زندگی هر چلای اک مشخصا سمبلی از زندگی معنوی است و به همین دلیل زندگی بیرونی این ظرفیت را دارد که ذهن را همان گونه که تعالیم مکاتب اسرار و ماورا و طبیعه اقنا می کنند و حتی فراتر از آن ارضا نماید اگر سالک قبل از پیوستن به اکنکار خاخان صحیح شدن در کشف اسرار درونی اک باشد در واقع سرمایه عمر خیش را به هدر آن به دین روش کار نمی کنند کشفل اصراب زمانی از راه می رسد که فرد وارد حلقه اک شده و بخشی از آن گردد تمامی چلاهای اک نیازهای مادی و دنیوی را طلب کرده و می‌کنند. و از آنچه که واقعاً بدان نیازمندند مندند قفلت تحقق آرزوهای دنیوی بی است و از و ابدا مایه تسلای خاطر نمی باشد. سمبولیسم زیر مجموعه بکنکار نیست آنچه مطرح است، درک مبادی و وجوه معنوی می باشد اعمال فیزیکی نردتا چیزی را سمبولیزه میکنند زیرا واقعا عملکردهای ساده و بی اهمیت هستند در تمایلات شخصی به هیچ عنوان مد نظر نیستند و اگر بنا باشد که چیزی انجام پذیرد ماهانتا استاد حق در غیل حیات از مجاری درونی سود می جوید و چلا آخرین واسطه یک می باشد آسانه ها، پوزها و حرکات یوگا مناسک مذهبی، نماز و اوراد متافیزیکی تماماً بیفایده اند. هیچ کدام قلب سجماد را لمس نمی کنند آن مستقنی از عشق و پرستش است آنچه چه به کار می آید باور، وقف و مسئولیت پذیری نسبت به جمله تجلیات و اصول آن است عشق و اعمالی از این دست در درجه دوم اهمیت قرار دارند یک اصل کهان در جهان ادیان وجود دارد که میگوید اگر انسان کاملی برای خاطر هم بمیرد تمامی گناهان جامعه پاک می شود آنچه از منش انسانی انتظار می رود اصلا به بهای مردن در راه دفع معزلات اجتماعیش نمی ارزد این احساس قدیمی که باید که انسان همه چیز را به خاطر دیگران انجام دهد یک اصل منفی است و از اصول نیروی کل می باشد که در انسان عمل می کند این تنها یکی از وجوه جهان مادی است و تا چلا به روشنزمیری حقیقی اک واصل نگردد چیزی عوض نمی شود تا این نور بر آگاهی نتابد هیچ کس نمی انتظاری از الهامات و آموزش های مذهبی خیش داشته باشد گناه نکردن حتی یک قدم هم کطی را به خدا نزدیک نمی‌کند ورود به عالم دل مستلزم استاد جریان صوتی و وصل است به همین سبب است که همواره از معنویت به عنوان ریاکاری و رندی تعبیر می‌گرد آنان که به خودشناسی در روح رسیدند می‌دانند که سودماد هست جاهل در پندارهایش چیزی را مهمتر از خیش نمی‌داند. اما شخصی که به دانستگی رسیده، است آندم که آن را میشنود آن را درک می از آنجایی که هر آنچه فهم فهمی شود در رابطه با چیز دیگری هستی دارد پس بیشک آن چه به عنوان آن قائم به معنا می گردد فراسوی تمامی حواس و ادراکات هست و کسی که این را بداند متوجه می شود که شناخت و معرفت آن در فهم نمی گنجد اگر آن در حیطه فهم شناخته شود پس ایجاد می شود از این رو مادامی درک می گردد که چلا شمع رخسار وجودش را در خورشید ذات آن مظهر نماید از لحظه که چلا خیش را در احاطه آن قرار می‌دهد آن او را به عنوان یک مجرای الهی اجابت نموده و در تمامی کائنات از او استفاده می‌کند هیچ چیز در تر از شکاف موجود ما بین باور و معلومات سرس نیست. این تضاد به قدری عمیق است که غالبا چلا از فسط سردرگمی به طور کامل از امور معنوی اک جدا می شود او با دنیای مادی سر و کار دارد، دنیایی که در آن زندگی میکنند. او به طور همزمان با جهانهای معنوی بخش اعظم دومه نیز درگیر است او با رجوع به سوابق تاریخی جرمی آبد که استادان اک در تمامی مقاطع زمانی در این جهان میزیستند، برخی رنج کشیده و به دست پیروان خود جان باختن. بعضی و از موجزاتی انجام داده و در انزوار احلت نمودن سایرین نیز تبدیل به چهره های مشهور در عصر خیش شده و از معتمدین و زمامداران معاصرشان گشتند برحوت بر میان باور و خزانه ای از دانسته ها و معلومات نشانه ای دال بر آگاهی دوشقه می باشد که از مشخصه های اختلالات ذهنی فرد در هر یک از تناسخات اوست این به مصابع آن است که دو نفر با دیدگاه های متفاوت گزارشی راجع به یک مقوله واحد بدهند و به این میماند که فردی با دو چارچوب ذهنی مختلف پردهای از تجارب خود را مرور می‌کند. این همان وضعیتی است که بدان تجزیهٔ ذهن میگویند آشوبی مصدع و مخل که در طول تاریخ تقریبا تمامی جوامع بشری و کل رهبران تشکلات انسانی و اقوام نژادی را آزورده است وقتی این تجزیه به صورت جمعی در بطن یک نژاد یا سازمان اجتماعی شکل می‌گیرد، منابع معنوی قادر به نفوذ در درون آنها نمی باشند کار استاد حق در غیر حیات واقعا مشکل می شود. نظام اجتماعی میل به اشتقاق دارد. زیرا هر یک از اعضای آن به صورت فردی مرتکب این اشتقاق شدهاند. آنها گرفتار انواع و اقسام جهتگیریهای ذهنی خواهند شد و به واسطه این شکاف اشاعه پیام اکبرای مهانتا اصطال حق در غیر حیات دشوار میگردد اما مادامی که مهانتا پلی ارتباطی میان خود و انسانهایی که در این وضعیت زندگی میکنند ایجاد می نماید آن دا هست که بطری کلمه یا اک که در ارتباطی تنگاتنگ با مظهر زنده ایمان اک قرار دارد استمرار یافته و شروع به پر کردن این شکاف می نماید چلای اک از امتیاز ویجهی برخوردار است و آن یافتن فاسخ سؤالات دشواری است که از آغاز زمان تا کنون همه ها را سرگرم کرده است سوگمات منشأ تمامی تجربیات اوست و بنابراین در حد خود از میزانی از تجربیات معنوی در اموری که فراسوی خرد انسانی قرار دارند بهرهمند می‌گردد. اما همانند اکثریت روحهایی که با جرأت و جسارت گام در مسیر عوالم بهشتی میگذارند اونی در بد و امر مشکلاتی درونی در رابطه با دانش الهی دارد خود خودشناسی را با آگاهی از طبیعت نفسانی خود اشتباه میگیرد کسی که از نفسانیاتش آگاهی یافته است تصور میکند که خود را شناخته است اما نفس تنها و تنها نسبت به محتوای خود است. و از خیشه روانی و حتی محتوای روانی نیز بی‌خبر است معیار خودشناسی ابوالبشر وجدان اجتماعی است نه حقایق اصیل معنوی که عمدتا از او پنهان است رفتار خیشه روانی انسان تقریباً همانند یک سازمان کالویدی با اعمال مشخص فیزیولوژیک آن است ولیکن اکثریت انسان‌ها آگاهی اندکی از آن دارند آنچه که امه آن را خودشناسی میدانند متکی به معیارهای اجتماعی است و همگی در قلمرو ذهن هستی دارند به همین سبب انسان همواره با تکیه بر این تعصب که امور منفی در وی راه ندارند سپری دفاعی برای خود میساسد به عبارت دیگر او با انگاره های توخمی نظیر حضور نامحسوس استادان و کیفیاتی از این قبیل که از وی محافظت میکنند زندگی می کنند. اینها عمدتا توجیحاتی ذهنی هستند که زعف و ناخشنودی را پوشش میدهند. این شامل گستره وسیع ناخداگاه در آدمی می شود. که در برابر تمامی تأثیرات و انحرافات روانی ویدفا است فرد زمانی می‌تواند در برابر کجروی‌ها و انحرافات روانی مقاومت کند که عامل مهاجم را بشناسد خودشناسی بر اساس عرف اجتماعی در این حالت محلی از اعراب ندارد بلکه درک فردی مد نظر است ها در این مورد چیزی در چنته ندارند. طیف وسیعی از عقیده ها،, ها و ترسهای بشر بر اساس تئوری و فرضیات اوستوارند. زیرا علی رغم کوشش دانشمندان علوم مادی، او هنوز نتوانست است معرفتی واقعی نسبت به خود کسب نماید. زمانی که انسان عقیده‌ای را میپذیرد، پیله ای از عواطف یا همان ادراکات اصیبی به دور آن میتند و ناگزیر است یا بدان اول نماید و یا در راه آن عقیده و طرز فکر کشته شود این اساس فرهنگی شهادت طلبی در انسان است و اگر شرایط اقتضا کند که قربانی شود جان خود را نیز در این راه فدا میکند اصلا این نوع از وفاداری کیفیتی متعلق به جهان اسیدی است به عبارتی قدرت احساسات در نهاد آدمی است که موجبات چون این مرگی فیزیکی و در این حال بی را فراهم می‌آورد. استادان اک این را خودکشی یا خیش انهدامی قلمداد داد کرده و از آن نهی می‌کنند، زیرا چیزی پس تر از این نیست که مرگ فیزیکی را تأثبی در حد آگاهی اسیری رغم زند رهلت برخی از استادان اکرا شاید بتوان شهادت نامید اما از استثناءات است استاد حق عموما از موضوعات روزمره که با چاشنی سیاست و مذهب آمیخته است دوری می کند. او فقط خلوص طریق بهشتی اکنکار را آمودش می‌دهد. او میداند که اده در نسیجه تحریف کات بر علیه او وارد عمل می شبند. اما اصلا به خود نگرانی راه نمی دهند. او با زبردستی تمام از موضوعاتی که باعث تقابل با به اولیاء قدرت در جهانهای مادی می شود می پرهیزد. آموزش های اک. تعالیم خالص این جهان میباشد هیچ دکترین دیگری هم پایه اک نیست اساتید اک واقع است که جدل و تلاش در جهت متقاعد ساختن کسانی که هنوز آمادگی‌های لازم را کسب نکرده اند است. اما تقریبا گفتره عمل جمله ادیان اصولی و مکاتب اسرار محدود به ستوح اسیری آگاهی هستند از این جهت ماهانتا استاد حق در غید حیات به هیچ روی وارد مجادله بر ضد ادیان اصولی شود او آگاه است که چنین مباحثاتی بلاحتآمیز بوده و هیچ محصولی برای طرفین دربار ندارد رهایی چلاعت از چرخه زندگی پس از ورود به ایکنکار از نقطه ای جوانه میزند زند که قابلیت پذیرش را در خود توسعه داده و تمامی سوالات خیش را متوقف می سوالات سؤالات معماغونه همواره تازه واردین را آزرده است او از این نقطه قافل است که هیچ سؤالی به وجود نمیآید، مگر آنکه پاسخی از برای آن موجود باشد تمامی سوالات توسط ذهن شکل میگیرد اما همواره تمامی جواب قبل از وقوع سوال پدید آمده به عبارتی راه حل مشکلات زندگی پیشاپیش این معضلات وجود داشته است این چک و تردید برخاست از ذهن بشر است و او را به سوی طرح سوالات سوق می دهد. در زمان فقدان باور و ایمان است که این تردیدها ظاهر می شوند وقتی پرسیده می شود که چگونه باید با بینان و شکاکان پرخورد کنیم پاسخ استاد حق در غیر حیات این است من ایشان را به دام می اندازم آنها را به جای میرسانم که دیگر نتوانند سوالی تر نمایند زمانی که بشر از حل مشکلات و درک ناشنافته ها عاجز میماند، ماند دوچار تردید شده و سؤال می کند او ناچار است بر اساس سنت ها و کلیشه های از پیش تعیین شده زندگی کند او بایستی از یک الگوی رفتاری متعارف پیروی نماید و در کنار کسانی که این الگوی منطقی را محترم میشمارند، شمارند همزیستی نماید چه در غیر این صورت غم و ما اندوه بر چارچوب زندگیش سایه خواهد افکند حتی با وجود زیستن در جوار مبدع اکه الهی چه بسا احساس ناتوانی و عجز به او دست دهد و تصور کند که نمیتواند منشأ اثر باشد این به واسطه آن است که او همچنان در قید و بند جامعه است و هنوز مستعد عبور از موانع موجود بر سر راه آزادی معنوی نیست با چنین نگرشی زندگی در هوشیاری نسبت به مسائل مادون و ناچیز یا همانا اشغال شدن با ارکان حسی خلاصه میگردد. او از سخن گفتن دم و بازدم دیدن شنیدن چشیدن حرکت کردن و باز و بسته کردن چشمانش آگاه است اما مجبور است که ماورای این محسوسات اوج بگیرد و توجه خود را بر واقعیات والاتر زندگی متمرکز کند این کیفیات از دیدن دانستن و بودن تا زمانی که قدرت از ماهانتا اصطاد حق در غیر حیات برشفت آرز می باشد روح فردی پیوسته در این جهان متولد می شود. و در خط سیر اتفاقی خود صعود و نزول را بر حسب عمل و اکسال عمل تجربه می نماید که چون این انباشتی را تحت عنوان کارما شناسایی می اینها سطوح مختلف آگاهی برتر و آگاهی پست در جهان فیزیکی هستند روح فردی در طی تناسخاتش از میان آنها عبور می کند. این سطوح شامل روان حیوان جماد نبات و مرتبه فرشتگان و ارواح انسوری است روح در مقاطع زمانی طولانی و عجیب متحمل تناسخات خود می اوج لذت و نهایت درد را لمس می و هزاران و بلکه میلیونها سال در چرخه سامسرا میچرخد و میچرخد. معمولاً تمامی راهها و رهنمود که مذاهب برای کسب آزادی توصیه می به جای اینکه روح را از خویش حقیقهش آگاه نماید او را در زنجره بیپایان تناسخ نگه میدهد. اما کوتاه ترین راه را به چلا نشان میدهد راهی که در هیچ یک از طرق خداشناسی و دفاعی از آن نیست همین که چلا قدم در طریق اکنکار می‌گذاشت، گدارد کارمایش شروع به سوختن کرده و جریان تناسخاتش معکوس می گردد و اگر چنانچه واصل گردد دیگر اجباری به بازگشت به این جهان مادی نخواهد داشت به مجرد اینکه در طریق اک گام نهد زندگی معنویش تحت حفاظت و هدایت ماهانتا استاد حق در غید حیات قرار میگیرد مادامی که فرد دیدگاه عک را میکند متوجه میشود که مشکل اساسی تمامی مذاهب جهان آن است که محتوای آنها چیزی به قراردادهای اجتماعی نیست از نقطه نظر مذاهب آزادی در گروه مغولات حاشیعی می باشند او به درک این نکته نائل می آید که اینها همه اسطوره و الگو می باشند نه حقیقت خالص این آزادی صرفاً رهایی از بند یک سری هرج های اجتماعی است و او را نه از بندهای کارمیک می و نه با گشودن گره های معنوی به خداشناسی می رهاند اغلب کسانی که از خطرات روانی موجود در راه خدا بیخبرند مسرانه تقاضای وصل از کسانی را دارند که در ظاهر گروه یا استاد می باشند آنها معمولا بدون کسب آمادگی های مقتضی خواهانه انجام هرچه سریع این مراسم مذهبی هستند و برایشان هم تفاوتی نمی کند که آیا به تازگی با این طریق برخورد کردند یا در دراز مدت به چنین نتیجه این رسیدند در نظر ایشان وصل مشابه الهاق به کلیسا از طریق قصد تعمیل بوده و یا به معنای کسب جایگاهی خاص است. اصولاً طرز تفکری که ایشان را بدون رشد و پرورش لازم به گرفتن وصل ترقیب میکنند است که آنها تجربیاتی روانی دارند و خود را در این مقام تصور میکنند که میتوانند باقی مانده امرشان را در کامیابی های مادی به برند وعده هر گونه تمتع مادی که به محض است هرچند معلمین کازبی نیز هستند که ادعا میکنند با انجام آین وصل و پیوستن به جمع آنان توفیقات مادی فراوانی برای افراد حاصل میگذد دسته ای دیگر بلافاصله قول پاداش و نصیب معنوی را میدهند یک از این وعده و وعیدها حتی ارزش کلامی که برایشان صرف میشود را ندارد این همانند فریاد براوردن در بالهایی است که از فراز اقیانوس‌های زده با شدت و هدت در گذر است ماهانتا استاد حق در غید حیات چون این تضمین‌ها این نمی‌دهد بلکه انتظاراتی را که یک واصل پس از وصل داشته باشد به او ابلاغ می‌کند او هرگز به کسی وصل نمی‌دهد مگر آنکه فرد دو سال در حوزه‌ی اکنکار مطالعه کرده باشد این بدان خاطر است که بنیه‌ی معنوی چلا به حدی برسد که توان ایستادگی در برابر ناملایمات معنوی حاصل از تصویر کارماهایش را داشته باشد اگر استاد در بض آشنایی چلا واقع به او وصل احد به خاطر اکسالعمل هایی که در مخالفت با راهی که چلا انتخاب کرده است رخ میدهد، به او تلغین می شود که اینها برای او بار سنگینی می باشد و پیامده قبول چون این هایی سرخوردگی و ترک طریق عک می باشد بسیاری از چلاها در دوره رشد مذهبی خود دچار این معضل میشوند آن زمان است که در بعض ورود به گروه های مذهبی واسل می گردند این قالبن الگویی ای از احساس گناه در زمیر چلا می و باعث می گردد که در آینده در برابر تعالیم خرد مقاومت به خرج دهد واسل که قوانین بنیادی اکنکار را نقض یا بدانها بی احترامی می کنند به طور اتوماتیک از کنار گذاشته می‌شوند. بدین مفهوم که او در تیرگی معنوی خود باقی مانده و مجالی برای رشد نمی‌یابد. اگر آنکه ماهانتا استاد حق در قید حیات مجددا او را پدیرا باشد. واس‌ها رها شدن از چرخه میپایان تناسخات را میساست میسازند. این دهایی با آگاهی یافتن از خیشه حقیقی حاصل میآید. زواهنگ جریان اکرامی میتوان در قالب دوره‌های طویل المدت زمانی که با خلقت آغاز و با انهدام جهان پایان می‌گیرند، ردیابی دیابین نمود. این دوره‌های زمانی با واحدی به نام کالپا قابل محاسبه است. هر کالپا یک چرخه کیهانی میلیون و 329 هزار ساله می باشد آگاهی انسانی چون این مفهومی را نوعی یک نواخی دردناک قلمداد می کند زیرا به ذرن ایشان روندی جائم و بی هدف است اما از منظر روح این کارگاه زمان نوعی بازی بچگانه می باشد زیرا روح بیرون از حیطه زمان به سر میبرد اما اجازتا شعن خیش را تا به حد یک جریان منقطع و پرمخاطره زمانی متنزل کرده است اینها الفاظ فلسفی نیستند بلکه نگاهی عمیق‌تر به سطحی از آگاهی میباشند تنها راه شکستن این کالپاها یا یوگاها و اتخاذ مسیری مستقیمتر به سوی خداوند از طریق وصحای اک تحقق میابد احدی را توان رهایی از چرخه مخوف آواگاوان یا به قول دویندگان حق چرخه هشتاد و چهار نیست مگر آن که دعوت اک را اجابت کند او پیوسته اسیر این چرخه خواهد بود ای که میلیون ها میلیون شکل و محدودیت های کارمیک را میآفرینند. خلاصی از چرخه آواگاوان، مکشا یا آزادی معنوی نام دارد. به طور کلی بخش اعظمی از فلسه اک پیرامون رهایی از این چرخه دور میزند. این رهایی توسط ماهانتا استاد حق در غیر حیات، تنفیز می گردد. چلا بایستی وصل خود را از استاد حق در غیر حیات دریافت دارد و در غیر این صورت نمی انتظار رهاییت از شرخه هشتاد و چهار را داشته باشد زنجیره ای که تیه هزاره های مدید او را در اعماق کالقاهای حیات محبوس می کلام اک همواره به واسطه زبان عالم واقع مقشوش می از همین رو فرقی میان واژگان پروردگار یکتا در آگاهی عمومی و خدایا آن در معنای حقیقیش وجود ندارد این نکته برای یکایی که اکیشتا در جمیع جنبه های مختلف اک ملموس می در ازخان عمومی حکمت اک معماگونه جلوه می کند از این حیث که اک حجم زیادی از مطالب و موضوعات را در باب خرد و همچنین آزادی روح عزه میدارد دارد ولیکن دستیابی به آنها منوز به ازبیت فرد در طریق اکمکار است به خاطر داشته باشیم که آنچه در ارتباط با آزادی معنوی بیان می شود بیشتر پیرامون آنچه که نیست دور می زند تا آنچه که هست این تعبیر واقعا گیج کننده است زیرا اگر ارتباطی با اجزای مهم زندگی فردی ندارد اگر تجربه است که اصلا محتوایی ندارد پس اصلا چرا باید مورد جستجو قرار گیرد به چه دلیل از چنین اهمیتی در طرح زندگی اگزیست برخوردار است از یک لحاظ می توان گفت که ظرف کالو و روح آدمی خالی است. پس بایستی به نحوی پر شود. این دیدگاه اصل تجربه را نفس می کند. ولی کن جای تعمیق و بحث است. بدین lẽ که تا نفی در کار نیاید اهمیت تجربه برای تجربه گر مشخص نمی شود زیرا که خالیا ها تا حد به استعدادش و قابلیتش تغییر کند اما ابتدا به ساکن خالی بودن حادث می گردند یعنی پرنبودن یک لازمه است تا معنای عمل مشخص کردند به همین دلیل است که آموزش های اک تا به دین حد و روی شناخت محتوای خیش منفی و آزادی آن از سیطره مفاهیم عام حقیقت تأکید می برسد. آن هیچ مبنایی را پیشنهاد نمی کند توصیه ای هم در خصوص اینکه چه چیزی بایستی خلاع خیش درونی را پر کند ارائه نمی‌دهد. چرا که عقیده و تفکر همواره بخش عمده ای از حقیقتی را که پیش حقیقی در دوستجوی آن است سانسور می کند. در اینجاست که ضرورت تمرین میشنزوای به طرح آزادی روح وارد میگردد. این بشایش و تصفیه روح از قید هویت هایی است که در طبقه مادی و جهانهای روانی کسب نموده است. روح آگاهی تام است دانش مطلق را در اختیار دارد و خفا‌یل عشق و قدرت تحت تملک آن است علاوه بر قلیلی تشخیص میدهند که این کیفیات درون خودشان است آنان به جای تفحص در خیش درون در بیرون از خود به دنبال چنین محصولاتی هستند لکن آزادی روح اما شکستن محاصره مادیتی است که از تمامی ممکنات برخوردار است اما زندانی در جهانهای پایین برای روح ساخته است روح از طریق تیسراتیل چشم سوم معبد خاکی خود را ترک و به جهانهای دیگر سفر می‌کند. با عبور از دروازه دهم ده ماهانتا استار حق در قید حیات را ملاقات می کند. که وی را قالب روح به عوالم قدسی مشایعت می کند جایی که آن شعص و برکت زندگی را نظارگر می شود نکته قابل ملاحظه آن که زمانی و مکانی هر طبقه متفاوت از جهان فیزیکی هستند قوانین متفاوت بوده و وجودها و ماهیتها تماماً به قوانینی به حیات ادامه می‌دهند که در زمین و طبقه ما قبل هر جهان تازهی ناشناخته می باشد. روح بایستی هر بار با قوانینی جدید خوبه گیرد و به موازات گذر از هر طبقه درست همانند قوانین متفاوت کشورهای مختلف در جهان فیزیکی می کنست که دیدگاه های متفاوتی قرین با قوانین تازه و این وجه نوین حیات اوست به عبارتی هر زمان که قدم در جهان معنوی بعدی می‌گذارد، گذارد در می که قوانین با مکانی که به تازگی از آنجا عظیمت نموده است از بی متفاوت است هر طبقه از خستی روح را محیای ورود به جهان بعنی می نماید در این تغییر و تبدیل معیار سنجش ایار حقیقت نیز دست خوش تغییر میگردد. بدین معنا که روح در جریان صعودش به جهانهای بالاتر در میابد که ادراک در واقع خداگاهی نسبت به حواس معنوی است یک حقیقت صرف یا مقصود و مطلوب در سفرهایش نمی باشد. منیز واقف می شود که نمی توان از دریچه دیدگاه فردی بخشی از عوالم معنوی را از سایر سطوح تفکیک و آن را حقیقتی واحد به حساب آورد این از بزرگترین است که آدمیان مرتکب می شود. ایشان قادر به درک پیوستگی زندگی معنوی نیستند و جهان فیزیکی را جدای از توسعه معنوی به شمار می آورند در نتیجه به عوض حقایق ناب درگیر توهمات می شوند در یک محکی غیر قابل لغزش از برای خلوص وجود دارد که به دور از پیشفردها و ابتکار قبلی چرخه اعمال را شکل می دهد و اینکه اندیشیدن و عمل کردن بر مبنای آگاهی شق شده مشابه نواختن سازی بدون کوک است یک شق به کناری میستد تا با شق دیگر مخالفت کند آن را تحت تسلط خود درآورند سازنش یا تحسینش کند اما خیش حقیقی یا روح به هیچ نحو شق نمی آن همانند شمشیری است که همه چیز را میدرد لیکن که نمیتواند خودش را بدرد این توخم دو شقه از تغلای ذهن ناشی میشود ذهن سعی میکند که علاوه بر خودش محتویاتش را نیز از سرگردانی در وادی حقیقت نجات دهد و این مقصود را با قلب کردن حقیقت به سمبول و مظاهر مختلف تأمین می نماید. برای پایان دادن به این خطای ذهنی فرد می این جریان سعی و عمل ذهن را که بر اساس نیازهای حیاتی تجارب گذشته و ارزشها و منیتها یا همان نفس تحتانی صورت می گیرد موقوف سازد بهترین راه برد برای تصحیح این انحراف آرام نشستن و بیعملی است این پایه و اساس تمرینات معنوی می باشد در این صورت رفتارهای حاصل از نشستن و بیعمل بودن بی اختیار یا ناخداغاه بروز می کند توصیف کلامی چون این فعلی واقعا مشکل و در این حال بسیار ظریف است اما ظهور احساسات مشمول این تعریف نمی باشد زیرا در این گونه موارد یک مکانیزم غیر ارادی دستن در کار است به عنوان مثال خنده و گریه افعال غیر ارادی بوده و عمل یا بیعملی داخلی به آنها ندارد تثبیت این آگاهی نوعی خلوص ذاتی به همراه میآورد. که باعث تمایز اکیست ها از سایرین می گردند می‌دانند ها می که از طریق ابزار ذهنی درک نمی شود. و از طرفی بدون ارکان تفکر نیز دیگر اشتیاق برای جستجوی آن معنی ندارد. باید دانست که میل انتفاب به منشأ خدایی و جستن آن ذاتاً در ساختار ذهن نهادینه شده است همین خاصیت ذهنی است که مسیر انسان را به سوی خدا شکل می‌دهد اما ذهن در مراتب بالاتر و جهت برقراری اتصال با معنا دیگر کارایی نداشته و بایستی به کناری نهاده شود ایدهال واقعی کشف خیشه اصیل نیست بلکه آرمان حقیقی بازگرداندن صفات ازلی روح به آن است همانند آن است که کودک ناگهان کشف می‌کند که واحدی مستقل است، و می‌بایستی با پذیرش مسئولیت‌ها زندگی اجتماعی خود را در این جهان دایر نماید. خودشناسی روح به توسط خودش نیز به همین منوال است. این شناخت را انجام منظم تمرینات معنوی اک به ارمغان می‌آورد. در حقیقت، از طریق بیعملی که از آرام نشستن و فائل نبودن است البته چون این فرایندی میتواند بسیار گمراه کننده نیز باشد اما چلا معالم ظرفیت اکراش شناسایی کرده و میاموزد که چگونه هوشیاریش را برای دریافت فعل و انفعالاتی که درونش جریان دارد تقویت نماید اگر همچون گیاهان آرام و منفعل بنشیند و انتظار داشته باشد که اناسو و زندگی پیرامونش رشد کنند دوچار یأس و دل خواهد شد این معما یکن است شخص در موضع انفعال و ترک عمل قرار میگیرد اما در همان حال بایستی گوش به زنگ باشد تا فرصت های فراری را که استاد برای همراهی با او به وی اعتامی کند بلفور پشخیص داده و به چنگ در آورد ترس از شک و تردید و فقدان بصیرت لازم در چلا تمامی جنبه های سفر روح را منتفی می سازند. همین همین کافی است که چلا را از طی طریق اک منصرف کند زیرا او توانایی پذیرش وقایعی که در درونش رخ میدهد را ندارد چنانچه نتواند زرافت تجاربی که در عالم درون برایش واقع میشوند را فهم کرده و باور کند چه وقتا طریق را ترک گوید زیرا به وی القا شده است که او دارد سرمایه عمر و انرژی خیش را برای کسب موفقیت در سفر روح تلف می کنند آنان درک نمی کنند که رویاگر جاودان در مقاطع با بایشان ارتباط برقرار می و آن زمانی است که در موضع سکون و بیعملی قرار دارند می این تجربه را با تجربیاتی که در رویا اتفاق میافتد یکسان تلقی نمود همین که چلا از تمرین خود فارغ می شود ممکن است بیچ شود که آیا این یک رؤیا بود یا یک واقعیت شاید آن را ماجرایی که در رؤیا حادث شده به حساب آورد و هرگز بهای لازم را به عنوان تجربه ای که از طریق مجاری اک در درونش رخ داده است به آن ندهد تایی نو ذهن بر پایه تصورات خودش برای چلایی که سالک خودشناسی و خداشناسی است واقعا فلج کننده است این تصاویر از ورای زندگی های گذشته تثبیت شدند و پایان یافتن آن بسته به اهمیتی دارد که چلا برای آنها قائل است او کاری با این پندارها ندارد اما مشکل در اینجاست که این تصاویر در تلاشند و در حین تمرینات معنوی اک بر او تأثیر گذارند ذهن در صورتی میتواند به درستی عمل نماید که از تلاش بیحاصل برای رسیدن به فراسوی آستانه ادراک خود دست برکشد ذهن میبایستی این مجال را به خود بدهد که با اعتماد به حافظه و تروشات فکریش حرکت کند. و در رابطه با ناشناختهها، به ناخودآگاه رخصت دهد که تصمیم گیرد اما در عمل ذهن جرأت ندارد که این فرصت را به خود بدهد زیرا به زعم ذهن گام نهادن به درون وادی ناشناختهها اقدامی بس حراسنگیز است به همین دلیل برخلاف مراقبه و تمرینات معنوی که معمولا فرایندهایی فراسوی ذهن و تفکر به حساب میآیند آیند اکیستا قالبا در زندگی بیرونی جانب عمل را برمیگیرند. و به همین خاطر است که ماهانتا استاد حق در غیر حیات برای تفهیم اک پاسخهای فوری و غیر قابل پیشبینی و به دور از پیشوردهای شخصی ارائه می دهد زمانی که شخصی در باب سرول سرالاسرات اک سوال می‌کند پاسخی که دریافت می‌دارد این است هیچ هیچ گونه فکری ابدا در هیچ یک از سطوح هستی اعم از فیزیکی، روانی و معنوی به فعلیت نمی‌رسد مگر آنکه همزمان دارای یک ناظر نازد باشد ناظری که اعمال را مورد تنجش و مداقه قرار می‌دهد اقدام به عمل و مقارن با آن تفکر در باب همان عمل زد و نقیز است زیرا ذهن را در هزار توی پیچیده سرگردان می‌سازد از دیدگاه ذهن این نگرش موجد احساس و عملی است که برای کلیشه‌های عاطفی تعریف نشده است اکثریت کسانی که در طلب خداشناسی هستند انتظار تجربه این نمایش گونه یا داستانی را دارند که تکان دهنده بوده همچون پتکی بر سر آنان فرو داید. ناهواظ این حقیقت ندارد زیرا تجاربی معیر العقول از این دست حالبن عاری از تصاویر و الفاظ است. یک اکیس میداند که تجربه یا مکاشفه و شهود همچون راهزنی شبیخون میزند. آن با ذرافتی عجیب از راه می رسد غالبا تشخیص و حس کردنش دشوار می باشد زیرا فرد اصلا نمی‌داند که بایستی به دنبال چه چیزی بگردد پس اهمیت لازم را به تجربهش مبذول نداشته و اصلا آن را به حساب نمی آورد. بعد هم گلایه میکند که از ابتدایی پیوستن به تا شاهد تجربه و رویداد خاصی نبوده است چون این بینش فقط و فقط ناشی از فقدان آگاهی است که باعث می شود فرد متوجه وقایع بدی در حوزه درک خود نگردد او چیزی را میبیند مکاشفه یا الهاماتی دریافت میکند ولی همچنان در مقام این پندار است که تجربه اش تجربه ای تمام و کمال نیست قافل از این که این تجربه کاملا منحصر به فرد و شخصی است او از اشخاص زیادی معنای تجربه اش را جویا می و همفنگ آن پاسخهای زیادی نیز می شنود که هیچ کدام متناسب با زمیر او نمی باشد بیشتر پاسخها منفی و درزد کننده است به طوری که سبب می شود او تاق و رواق تمامی تجارب خود را در هم شکند نکته در اینجاست که چلا خود بایستی تعیین کند که تجربهش واقعیت است یا توهم. بدین معنا که چنین دریافتهایی همواره درونی بوده و مرزهای بسیار ظریفی دارند. حتی اگر خود ماهانتا استاد حق در قید حیات بر او ظاهر می شود با خود اوست که تشخیص دهد که آیا این صحنه واقعیت هست یا توحا می برخواستد ذهنیاتش می باشد. تجربه به حدی شخصیست که او عبدا نبایستی اجازه هیچگونه مداخله بیرونی را بدهد او مجاز نیست که آن را به جز ماهانتا استاد حق در غیر حیات به بحث گذارد و اگر آن را در قالب ای برای استاد بفرستد باید در تغریر آن دقت لازمه را مفضول دارد و در صورتی که بخواهد شفاهن آن را با استاد مورد بحث قرار دهد بایستی با هوشیاری و دقت توان باشد هر اکیستی که تجربه ای با ماهانتا یا سودماد دارد بر اخته اوست که مرز حقیقت و غیر حقیقت را از یکدیگر تمیز دهد تشخیص و تمیز او ربطی به هیچ مرجع دیگری ندارد تجربهش کاملا خصوصی و شخصی است و لازم است که آن را به همین گونه که هست نپذیرد این مثل غریزه خوردن میل بخوابیدن و همچنین عواطفش جزئی از وجود اوست لزومی ندارد که سایرین هم از آن مطلع گردند مگر ماهانتا استاد حق در قید حیات وجودی که از بینش و بصیرت کافی برخوردار است و تنها اوست که میتواند در تجربه چلا شریک گردد. ماهانتا استاد حق در قید حیات در تمامی اوقات نسبت به جزء جزء کیهان هستی احاطه کامل دارد و اکیست همواره میبایستی به خاطر داشته باشد که با کنون زمانی نبوده است که ماهانتا او را تنها گذاشته باشد زیرا برای ماهانتا اهمیتی ندارد که چلا در کجا و به چه کار بوده است او با گدر از تجارب زندگی روزمره میاموزد که چگونه از طریق حواس بیرونی و درونی خود متوجه حضور استاد شود این است که هیچ کس نمیتواند وی را از آن محروم سازد تمامیت زندگی به این معرفت ختم می گردد که مهانتا حاضر مطلق است و اک زندگی را مبدل به کانونی از شعف می نماید. ممکن است که در طول مسیر چلا مرتکب لغزش شود که خاطر او را هزین سازد اما برقی در دلش افروخته است زیرا در هر لحظه می تواند هایش را با هلاوت برکات زندگی محس سازد